و لذا در این مسئله معروفی که الان اهل سنت مثلا میکنی شما مثلا چرا افراد لحن میکنید مثلا فرد محیینی خب این تابع بحث موضوعی است. یعنی به عبارت دیگر این, این تابع این نقطه است. الان مثلا در کتاب ابنه در جلد یازده در بحث حد منافق در بحث منافقی روایت عبارتی داره که ولید ابن جمعه روا اخبار هست اصلا منوشه بیشتی خبر بوده می ها ان ابوبکر و عمر و فلان و فلان عراضو 갔ند در ليله اسم بره که این هر چی که اسمش تو حساسه نقطه است اسمش 12 نیست این در این کتاب اهل سنت در هفت آمده در کتاب هدای کبوران مفتو آمده در واقع جا 12 آمده در کتاب حساب سال صدون 14 تا آمده علاوه عدد این افراد دیگه در ليله الصغیه در تبوک در بازگشت از تبوک هاستندtelegram براش رو مخترعت نام شده در حال اولی و دومی و ادی از این اعاظم صحابه در اونها وجود دارند در اون مثالی که خدا خب این در حقیقت این جوابش برای احمد این عبارتی که ابن حزم داره واضح کاملا واضحی که ایشون می‌خواد بگه اخبار صحیحه دقت بکنید وجود داره که ابوبکر و عمر خواستن پیغمبرتش رو رو این عباذه ازه صحبت تسویه چاپ بحریه هم از این کتاب که در وابرهندی، اونجا هم آورده، حرفش نگرفته. الان اونی که ما الان داریم، یعنی که روایتی که چاپ شده، یک دانه از این خبر هم وجود نداره. ابن حزم معاصر شیخ طوسیه، تا قرن پنجم بوده. حالا اون اخبار کجاست خب، ظاهر عبارتش من وقتی از جوینی روایتش خوندی، ظاهر عبارتش کاملاً واضحه که روایات صحیحه وجود داشته بوده. حل محلا یازده اون شافی که یازده جلیه سرفیل نظر بیست و میست چون میگه و اما خبر روزه فساقتون لرنهو منطریق ولید ابن جمعی به هوا حال کن حالا این از اینکه که میگه منطریق ولید ابن جمعی به حال کن معناش اینه که این روایت دیگه است نداره فقط ولید ابن جمعی برنهو روا اخبار هم چیه ها این ولید ابن جمعی هم نعبا بخه با عمر و قرآن عراض ندی، قفل ندید بعد میگه و سراحی معلوم دروخه خب من خب شما به شوازده خود روزم دروخه سند معتبره اولا تحبیر به اخبار داره و این نبوده بعدم اشکال در سند به قلیدرد جمعی کرده چهار تا اصطحای اهل سنت از این حقیق من منجم به خود مسلم، استاد مسلم خود مسلم از این البته اطلاع از اهل سنت هم انصاب با دوییم نمیستن مرد از خوبی نداشته چرا مسلم ها داشته درسته نهر کرده چرا چرا به خود مسلم برگل این شخصی که ایشون میگه و حال کن و اشخال سند رو میبره روی ولید ابن جمعه این خودش از مشایخ مسلمه و ما این هم مسلم سه نفرگر از سه ها اربعه ازش نهر نکنم بخواهی ازش نهر نکنم مسلم ازش نهر نک که معنای این عبارت رو اگه بیه درس یک حدیث شناسی کاملا واضحه که این هم احادیث اخبار صحیحه بناظام میگه ولا نعلم من وزن. ما نمی دونیم شینه درس بده خب یعنی سند مشکل نداره سند روشن. اما مطلبم که ابوذر همون که مثلا شروع کردن پیغمبر گفتو ولا یذرا یا ولا نعلم ولا یولن منزه خب حالا به اون رو بکنم شما یعنی داریم که این خبر محضوبه اگر کسی گفت نه آقا اخبار سهی وارد شده ما قبول داره و هر این کار رو خواهد این چه مشکل داره؟